بقیه یک خود را برای من تعریف نکرد. آن روز صرفه فرصتش نداد ولی اصل این موضوع این بود که از سوال آخر من بدش آمد. روز بعد که رفتم حوصله نداشت. بعدها هم هرچه اصرار کردم خودداری کرد. اما این تمکین نکردن او بیشتر مرا کنش کرد و به هوس انداخت. من حدس میزدم که شاید جنایتی کرده و می است یک مرتبه اقرار کند تا راحت شود. از این جهت بیشتر به خانهاش اش شد می کردم یک روز از او پرسیدم که کوکب کجاست؟ در جواب من گفت نمیدانم. خیال می کنی که زنده باشد؟ در هر صورت برای من که مرده است نمی یک مرتبه دیگر او را ببینی؟ جواب نداد من باز پرسیدم چند وقت است که او را ندیده ای. اگر میخواهی من راحت باشم دیگر از من از این حرفا نپرس برای من کوکب مرده همانطور که مادرم مرده است از او حرف در نمی در خیابان اسماعیل بزاز بود با در و همسایه او آشنایی به هم زدم از تحقیقاتی که راجب او کردم چیزی دستگیرم نشد بقاله سر کوچه می گفت که ما هیچ وقت او را نمی بینیم، کمتر کسی به خانه او آمد و شد می کند. گاهی زنی می آید و فوری هم می‌روَد. هیچ وقت هم نشده است که شب کسی در خانهش مانده باشد. نوکر خانه همسایه گفت که من فقط یک شب او را در باغ فردوس دیدم. بالاخره از میراب محل که اتفاقاً آنجا بود شنیدم که اغلب شبها در همین کوچه‌ای سر قبر آقا و میدان پاغاپوغ سرگردان است و دم صبح به خانه برمیگردد من خیال کردم که این زن کوکب است اما بعد معلوم شد که خواهرش امین‌آقا اما آخر شب خودش عقب کوکب کردد یک روز در حیات خانهش با امین‌آقا روبرو شدم این زن اصلا شوهر نکرده سر سی سالگی توبه کرده یک سفر به کربلا رفته و بعد ملاباجی شده و حالا ترقی کرده و در مدارس دختران قرآن درس میدهد. خواهی نخواهی از او بعضی حرفها درآوردم. امین آقا صورت باریک و لاغری داشت. روی لبش سالکی بود که او را زشت و بد ترکیب میکرد. امین آقا هنوز شوهر نکرده بود و دعای من تسبیح میگردند و ذکر میگفت. من میخواستم بدانم که او از زندگانی برادرش در بوشهر اطلاعی دارد یا خیر. در حالی که روبندهش را رو کمی بالا زد به طوری که من میتوانستم زیر ششمی سالکش را ببینم چنین گفت. استغفر الله پدر خدا بیامرزم اگر بفهمد که من چنین این کفرها از دهنم خارج میشود گور میلرزد. مخصوصا پدرم که از این بچه هیچ وقت خوشش نمی آمد. برعکس ننم، او خیلی این را دوست داشت. از همان بچگی با وجودی که من دختر بزرگ بودم، حاضر بود که همه ما پنج تا را به گور بکند، اما یک موثر این کم نشود. در صورتی که او ته هم نبود، خدا بیا زدان خواهر کوچکترم، بگم آغار را که عمرش را به شما داد. تحتقاری او بود. او شوهر کردم دیگر رو نخواستند بعد دق کرد و مرد اما محبت ننم به این بچه دیگر از این حرفها گذشته بود برای هم میمردند مثل عاشق و معشوق بودند همیشه ننم یواشکی بهش میگفت تو یوسف من هستی. همینطور هم بود این هم همینطور بود. اصلش را میخواهید این بچه از غصه مرگ ننم اینجوری شد از همان وقت از دست در رفت. چیزی پیش از رفتن به بوشهر نبود که ننم عمرش را به شما داد. اصلا مسافرت به بوشهر همسر این شد که بابام زن گرفت و دیگر این هم نمی‌خواست بعد از مرگ مادرش این زنی که را توی خانه ببیند. میدانید چیه؟ بابام چشم نداشت این پسر را ببیند. زیر کرسی نشسته بودیم. پای این بچه که به کرسی می‌خورد و چراغ تکان می‌خورد، اگر بدانید چه می‌کرد. سر قلم و کتاب مدرسه دعوا بود، سر دیر به خانه آمدن دعوا بود، سر شام دعوا بود، سر نهار دعوا بود حالان مادر مرده، ننم، چقدر مصیبت سر این دو نفر کشید دیگر دل هر مسلمانی ریش ریش می شود آخر سری یک روز پدر و پسر درست دعوا کردند، از آن دعوا که هرچه از دهنشان در می به هم گفتند. این حرفش این بود که تو عوض اینکه این همه سیغه میگیری یک کمی خرج مادرم کرده بودی و نمیمرد. اما بابام چی می میگفت؟ زبانم لال، زبانم لال. هفت قرآن در میان، من هیچ وقت به کسی دومد نمی زنم نمیزنم. می میگفت که تو به زن من دست درازی کردی. اما این دروغه. این دروغ را آن زنی که چش ترکیده که الهی دل و جگرش رو تخته مرده چورخونه پایین بیاد درست کرد. از همان وقت این هم گفت که من دیگر در این خانه نمیخواهم بمانم بعد من پرسیدم شما از زندگی او در بوشهر که خبری ندارید از آنجا که برگشت چطور؟ چرا؟ از شیراز هم یک چیزای خودش میسر و ته برای من تعریف کرده متعا من درست نفهمیدم الهی خدا این زنهایی را که من میدانم نسلشان را از روی زمین بردارد آره از بوشهر که برگشت این ناخوشی را همراه آورد چه ناخوشی؟ مگر نمی دانید. همین دیوانگیش را. آخه اول که از بوشهر برگشت در خانه من منزل داشت. هر روز صبح که از خواب بلند می میدیدم که تمام بخچه های من ویلنگو توی اتاقها ریخته. حتی جانماز من هم که دست فلک بهش نمی همین همینجور واز توی اتاق افتاده. روز اول خیال کردم که دوست آمده بعد دیدم چیزی گم نمی شود. و به علاوه کار هر روز است یک شب کشیک کشیدم دیدم خودش هست شب که میخوابیدم خوابیدم بودهن می و هیجوی بخچایی من میگشت. ازش میپرسیدم که این چه کاریه نه هرچه می محل نمیگذاشت صبح که ازش می پرسیدم. اصلا خبر نداشت من دیدم که این درد بی است که او مبتلا شده مثل این که عقب چیزی میگشت، حالا هم همین جور است شبها یک هو بلند می شود هر چیزی که مثل بخچه باشد باز میکند. از همه بدتر این شپشک هاست که توی تمام تنش بار شده از سر و روی شبهشک بالا میره. من از حاجی میرزا زای حکیم باشی پرسیدم میگوید آخر کورش خواهد کرد. خدا میداند که من دلم ضعف میره. اما. من بدبخت چی کار بکنم آیا محتاب قشنگ نیست؟ چرا؟ برای آن که تمام منازر عاشقانه و شاعرانی شعرا و نویسندگان مساوی است با ظلف پریشان به علاوه کنار جوی آب به علاوه محتاب غافل از اینکه محتاب هم با شرایط دیگری خوب و بد است اما محتاب به علاوه زنهایی که قیمت آنها است؟ به علاوه چاروادارهایی که به شهر میآیند و با کوفت به ده بر مساوی است با نکبت و بدبختی این محتابی که من دیدم این محتاب مثل چرک سفید است که روی خیابانهای طرف جنوب شهر ریخته شده و این چادر سیاه که در کنار کوچه ها در سرما به دیوار چسبیدند مثل خون دلمه شده روی زخم هستند من عقب یکی از آنها می کردم. چه اغلب وقتی نزدیک یکی از آنها میروم میگویند بیا توی کوچه وقتی که توی کوچه میروم میگویند اول دهشایی را بده. من دنبال کوکب می کردمم خای سرنوشت رفیقم در من تأثیر کرده پیشانیش کمر بسته چشمهایش قی گرفته تریاک دارد او را میکشد فقط این زن می تواند او را نجات دهد. من پهلوی خودم فکر می کنم اگر فرزن هم بمیرد چه تأثیری در نظام عالم دارد این فکر در جای خود منطقی و درست است اما شاید کوکب هم به جای خود عضو مفیدتری برای جامعه باشد بله مفیدتر از آقای چوبچی شبخارا کوکب در کوچ اطراف باغ فردوس میگذراند از سینما تمدن تا میدان شاه و گارد ماشین، اینجاها خط سیر و منطقه نفوز اوست. فرزن هم کوکپ را دیدم. او چه میتواند بکند؟ شاید او را وادار کند که باز آدم بشود. این زندگانی پر از کسافت دیگر دوام پذیر نیست. مدتی است که زندگانی او را من و امینناقا اداره میکنیم. و قرار گذاشته که امشب حتما کوکب را پیش من بیاورد شما اگر کشتیار من بشوید، من دیگر پیش این مردی قرمساق ای نمیرم. چقدر من زحمت و مرارت از دست این کشیدم. شما که خبر ندارید، من جونم رو بالای او گذاشتم. خودم رو تموم کردم که خدا تمومش بکنه. شما پهلوی خودتون میگید عجب زنکه یه دلسنگی من هستم. اما به خدا به ارواح پدرم اینجور نیست. بذارید همش رو برایتون تعریف کنم. من در بوشهر با او آشنا شدم. آن وقت بچه خوبی بود. من کلفتش بودم. همه کارهاش را مرتب میکردم. اصلا من اونو زفت و رفتش میکردم. یک شب به من گفت کوکب من تو رو خیلی دوست دارم. تو مثل مادرم هستی. تو نمیدونم چشمات مثل چشمای مادرم میمونه. دهن چجوره دماغ چجوره. من اون وقت پاک بودم. طیب و تاهر. هنوز سر ناخونم را نامحرم ندیده بود. به هرومی هیچ جور حاضر نبودم. من که نمیدونستم این از جون من چه میخواد؟ یک شب از روی سادگی بهش گفتم من حاضرم سیغه شما بشم. فردا بیایید با هم بریم پیش آقا و کارو تموم بکنیم. شما اگر منو قابل میدونین و میخواین من حرفی ندارم. یک هم مثل دیوانه ها شروع کرد به خندیدن. منم که دیدم این جوره دیگه حرفی نزدم. کوکب زیر کرسی توی اتاق من نشسته بود، پشت سر هم عرق می‌خورد و دود می‌کرد و برای من سرگذشت خود را میگفت. صورت چروکدار سبز رنگی داشت. ته آبلئی هم توی صورتش پیدا میشد. لیسایش مثل چوب‌های جارو نرمه توی صورتش آویزان بود. روی هم رفته کوکب چیزی که نبود خوشگل، و الا هر عیبی داشت. من یک مرتبه یادان سربا سربی ها افتادم و پرسیدم. پس اون سرباز سربی چی بود ده اینو برای شما هم تعریف کرده این اصلا دیوونه است به ارواه پدرم اگر اینکه میگم دروغ باشه. این یک نظر قربونی بود که من برای خودم خریده بودم. نظر قربونی نبودم اما خب راستش رو بخواهید. من آن وقت شوهر غذاقم رو خیلی دوست داشتم و اون را به یاد او خریده بودم وقتی هم گم شد خیلی اوقاتم تلخ شد اما دیگه اونقدر دستک دنبک نداشت این حقهش بود میخواست من اونجا توی ولایت غربت نگه داره یک شب من بلند شدم دیدم یکی از این سربازهایی که آن وقت با هم درست میکردیم اما نکرده و بیقد و قباره و لخت مثل قلبیابانی باقیش نمیتونم بگم درست کرده توی بخچه من گذاشته من راستش رو میخوایی ترس فرم داشت صبح فرار کردم و آمدم به شیراز. اینجا شوهرم رو پیدا نکردم سراغش رو گرفتم گفتن دو مرتبه زن گرفته حالا اینم مصیبتی داره اینجا چه مرارتها کشیدم جای خودش باشه. حالا شما ببینید یک زن تنها در یک شهر بیکس چه بکنه؟ من که کار بلد نبودم. برای اینکه جوون بودم، هر جا میخواستم کلفتی بکنم، خانوم راضی نمیشد. اگه خونه خانوم نداشت که از دست آقا راحتی نداشتم. بالاخره یکی از این شوفران منو مدتی نشوند. بعد من اوورد به تهرون. دیگه من از اون وقت تو این خط افتادم یک رسوی باقوهلی گردش میکردم باز اونجا دید. سر و روی درست کرده بود تا چشمش به من افتاد عقب من آمد و من او به خونه خودش هر کار کردم دیگه نذاشت از خونه بیرون بیام حالا من چطوری به شما حالی کنم حرفش به من این بود که تو مثل مادر من هستی و من تو را مثل مادرم دوست دارم وقتی که بهش میگفتم خب تو اگر منو میخوایی بیا به من سر و سرانجومی بده یا منو بگیری یا سیغه کن آخه این جور که نمیشه باز به من میگفت نه تو مادر من هستی آدم که مادرش رو نمیتونه بگیره من حرفش رو قهد کردم اخر اگر تو را می‌خواست پس چرا تو رو نمیگرفت چطور بهت بگم تا بفهمید اصلا مرد نبود مثل دیونا خودش را میانداخت به روی من سر و صورت مرا ماچ میکرد تا من بهش دست میزدم منو میزد و میداد گیسایی منو میکند یک روز من اونقدر با چوب زد که از حال رفتم از خونش فرار کردم هر جا میرفتم قلاغزاغی منو چوغ میزد هی hey منو پیدا میکرد باز منو میورد تو خونهش باز من فرار میکردم یک سال آزگار زندگی من بیچاره اینجور بود اینجا دیگر کوکب گریهش گرفته در این مدت من با کس دیگری هم نبودم راستشو به شما دارم میگم میدونید من از هیچ کس باکی ندارم از فلک نمیترسم ببینید منو توی کافه ها هم نمیدند من توی خیابان لالزار و اسلامبول نمیتونستم واستم جای من این کوچه های سر قبر آغاست عوضش نوکر خودم هستم هیچی ندارم که ازم بتونن بگیرن جونم را آن را هم من حاضر بودم برای شاگر شوفرا فدا بکنم کی میتونه با من کار داشته باشه خونه زندگی شوهر بچه پدر مال مکنت هیچی ندارم در عوض از فلکم نمی ترسم شما اگر کشتیار من بشید من دیگه خونه این مردی که نمیرم. اما اگه برم هم دست بخواد به من بزنه پدر پدر سوختهش را در میارم این دفعه دیگه میکشمش. از چی می ترسم؟ قضیه شب آخر را نمیدونید. دونید سمستان پارسال بود من شب رفتم توی اتاقم بخوابم دیدم لحاف و اسباب اتاق سوخته و رویش آب ریخته بوده که آتش رو خاموش کنه نگو که وقتی من نبودم آمده بوده بخشه منو زیر و رو کرده بوده و تمام کرسی را به هم زده بود یک مرتبه آتش منقل ریخته بوده روی لحاف نزدیک بوده که اتاق علو بگیره خودش رفته آب ریخته توی اتاق من بدبخت حالا هیچ جا ندارم بخوابم مثل بید می‌لرزم هر کاری میکنم که منو توی اتاقش راه بده مگه کسی حریفش میشه آخر راقبت یک آقایی توی همان حیات همسایه ما بود او دست منو گرفت و برد توی اتاقش تقصیر من چی بود؟ من که جا نداشتم صبح وقتی فهمید میخواست بیچاره شیده رو بکشه هی hey داد میزد که تو به مادر من خیانت کردی من تو را میکشم من از ترس اینکه مبادا کار به جای بد بکشه فرار کردم و دیگه اونجا نرفتم و اگر شما مرا را تیکه هم بکنید نمیرم من کوکب را تیکه تیکه نکردم تا یک خورده پول بهش دادم عرق هم تاثیر خودش را بخشیده بود بیچاره جا و منزلی هم نداشت این بود که دستش را گرفتم و بردمش به خانه رفیقم وقتی که کوکب توی اتاق رفت من مدتی توی هشتی ایستادم چون سر و صدایی نشد برگشتم و رفتم روز بعد هوابی اندازه سرد بود. برف تمام شهر را گرفته بود. از اداره که بیرون آمدم رفتم به سراغ رفیقم در خیابان اسماعیل وزاز. در خانه بسته بود و محروموم شده بود. مدتی در خیابان قدم زدم. بعد آمدم به میدان شاه و از آنجا سوار اتومبیل شدم که به خانم بروم. در اتومبیل صحبت از این بود که دیشب مردی زنی را خفه کرده است. نزدیک کوچه دردار مردی با یک چمدان به دست ایستاده بود و داشت گردنش را می‌خواراند. شاگرد شفر متوجه این مسافر نشد. شوفر خودش اتومبیل را نگه داشت و به شاگرد شفر گفت: یالا دهشایی را از سر راه بردار. مردی که داشت گردنش را می‌خواراند دست توی جیبش کرد. مثل اینکه عقب پول می‌گشت. وقتی که آمد سوار اتوبوس شود چمدانش به رکاب اتوبوس خورده در آن باز شده مقدار زیادی سرباز سربی روی برف ها ریخت. شوفر دیگر منتظر نشد. اتومبیل را حرکت داد. مردی که گردنش را میخورارند سرباز ها را جمع کرد. چمدان را دست گرفته فریاد زد: «نگه دار! شفر اعتنایی نکرده فقط شاگرد شوفر گفت. بارا پی كارت ورمساق خیال میکنی مردم آزاری خوبه